سلام به پیار پادکست خوش اومدید. در هر قسمت از این پادکست من آرش به همراه دوستم مهدی با یکی از توسعه ده دهندگان برنامه‌های بازمد هم صحبت می‌شیم تا از چالش‌هایی که داشتن حرف بزنیم و از مسائلی که طی کردن بشنویم. شما در حال شنیدن قسمت 8 ام از این پادکست هستین که در مورد مرداد ماه 1401 منتشر شده. مهمان این قسمت علی سازنده لایبرری Persian Tools. Persian Tools is a standalone library agnostic javascript that enables some of the persian features for use in the javascript. برای اطلاعات بیشتر میتونید به سایت ما با آدرس پیارپادکست سر بزنید. همچنین در صورتی که علاقه هستید از اخبار پادکست متعلق بشید میتونید ما در تلگرام و توییتر دنبال کنید. به نظرم اوله کار یه موقت میخوای پروژه رو معرفه بکن که هرچند از اسمش واضحه پرشن تولز و یه نفر اگه بره ریپوزیتوری نگاه بکنه متوجه میشه ولی میخوای یه معرفه کلی داشته باش که آقا چیه چی کار میکنه راستش این سوال،, سوال خیلی خوبیه من گذاره بیایم عقبتر رول بک کنیم به دورانی که چی شد من این پروژه رو شروع کردم چون علتش خیلی مهمتر از اینه این که خودش رو چی کار میکنه. زمانی که من سال 2017 تقریبا علی بابا بودم ما روی پروژه علی بابای جدیدی کار می کردیم. به مراتب با توابع یعنی درگیر توابع بودیم که این توابه در دنیای فارسی بودن و واقعا توی اینترنت نمی‌تونستیم به اندازش کده راحتی پیدا کنیم کدی که باگ نداشته باشه مثلا زمانی که میخواستیم توی فرایند استپ دوم خرید یک بیلیتی بیایم وریفی کنیم کد ملی کاربری رو ما مشکلی نداشتیم که چطوری می‌تونیم ولیدیت کنیم اینو همین برام چالش شد رفتم درستش کردم کدا تغییراتی که لازم بود و دادم بعد خب اینجا شروع شد گفتم حالا این یه تابه بود توابه دیگه که داشتیم مثل این که تو زبان فارسی بتونه روی این اعداد کاما بذاره یه جای کاما رو ورداره بعد بتونه این دیجیتا رو هم همدیگه تبدیل کنه و این دیجیت تبدیل کردن ها واقعا برامون یه چالش بود. یعنی هر کسی تو اینترنت برای خودش یه کودی زده که این کوده را شما اگر بذاری کنار را هم دیگه یه تسکیسی رو روش اجرا کنی میبینی هر کدومشون به یه دلیل خاصی داره اون تسکیس رو فیل میکنه خب خب اینجا برام سوال شد خب وقتی من همه اینا رو فیکس کردم توی کد بیسی قرار دادم چرا اینو ندم چرا اینو توی ریپازوری نذارم بقیه هم استفاده کنم اونجای شروع شد که من رفتم سرمت پروژه پرشنتورز پروژه پرشنتورز زمانی که من توی ریپازو توی سال 2017 ساختم اصلا حسی نداشتم که این پرشنتورز اسمش با یه شرکتی برابره واقعا نمیدونستم اصلاً خبر نداشتم اینو و همون پرشن ساختم و کد رفت جلو اولین بار هم زمانی که من کار شروع کردم چندین تابع اضاف کردم تابه که بتونه دیجیتال رو کنترل کنه از ف فار... دیجیت فارسی رو به انگلیسی دیجیت انگلیسی رو به فارسی تابه که بتونه در حقیقت متن رو نمالایس کنه متن فارسی رو چون یه متن فارسی رو زمانی که وقتی کپی میکنید به خاطر که ان به هم ریزه اینکودینگش بعد بعدتونین مرتبش کنید تا دوباره به متن ناصلی برید. یا که بتونه حروف رو متن مثلا 125000 رو تبدیل به عدد کنه دوباره همون عدده رو بتونه ریورس برگردونه به متن خب اینا چیزهای جالبی بودن که وقتی من اینا رو نوشتم همه رو تو اون پروژه گذاشتم پروژه دیزن نشد یعنی همه اینا رو من گذاشتم خیلی فیچرهای با حالی بود مثلا مثلا, مثلا که کد ملی رو ولیدیت میکرد می, کرد. می این کد ملی مال کدوم شهره موضوعات دیگه که مثلا برام همیشه وجود داشت اینا بسته شد رفتیم تا زمانی که من وارد هستین شدم هستین شرکت بانکیه که همه خب تمام اطلاعات بانکی اونجاست یه تابعی ما میخواستیم که بیاد شماره کارت رو کنه و بگه این شماره کارت مال کدوم بانکه کدی که توی در ها از قبل نوشته بودن این باگ داشت روی یه سری شماره کارت رو باگ داشت نمیتونست بفهمه این باگا رو من برطرف کردم و یه رو توی پرچنتوز منتشر کردم حالا اینا تموم شد. پروژه دیده نشد. یعنی من خیلی برام عجیب بود. من زمانی که پروژه پرشنت روزو پاپلیش کردم تلاش کردم خیلی پروژه مرتب باشه. تستاش خوب بود اما کامل نبود. ولی مستندات خوبی هم داره که من الان در دلمگه بش بش اشاره میکنم که چقدر تحت تمیز مستنداتش ارزش آره من چون من یه ذره به خاطر اینکه حالا نمیخوام منفی باشه ولی به خاطر اینکه یه ذره توجه به جزیاتم زیاده تلاش می‌کردم مستنده خیلی جامع و کامل باشه یعنی نیاز نباشه اون برنامه نویس ایشو بزنه سوال بپرسه من بتونم حد در امکان خودم سوالشو جواب بدم تو اون چون میدونستم زمانی که من دارم من تقریباً 6400 تا دونه ریپازتوری رو توی گیت‌هاب دیدم و استار زدم که تقریباً بالای 1000 تاشون رو, رو خوندم یعنی تقریبا نه تمام کدشون رو اما بخشی از کدشون رو خوندن که چطوری نوشتن چی شد که این پروژه انقدر منسجم کار میکنن و ها منسجم دارن روش کانتریبیوت میکنن و این تجربه هبه هم کمک کرد که ریدمیه مرتب باشه ریدمیه بتونه جواب آدم ها رو بده بخشی از این ریدمیه از کجا آمدن پروژه و جای سا زمانی که دیدم این چقدر داکیومنت ساده است چقدر روونه چقدر من راحت میتونم بفهممش این به من کمک کرد که منم برم همین ایده رو بردارم بیام توی پرشند روزم پیاده کنم ریدمیش تلاش کردم حد تل امکان ساده باشه مرتب باشه اضافه گویی نکنم تا جایی که میتونم حالات مختلف رو مثال بزنم که اگر طرف داره میاد این کدرو این میخواد ازش استفاده کنه حالاتش رو هم ببینه چون خیلی زمان ها من میرم ریدمیو رو که میخونم، حالات وجود نداره. یه حالت خاص نوشته شده، ایفو ال سای حالت‌های دیگه تو تست کیس‌ها دارن پس میشن و من برای اینکه بخوام اون حالت رو بفهمم بعد برم تستاشونو بخونم. خب این یه باگه، این یه ایشو که همیشه من رو این ریدمیو میبینه. بعد در نتیجه تلاش کردم اینا یه ذره توی این ریدمی پرشنت تولز و بشه نقطه قوت پرشنت تولز. اینم از این درست علی جان تو صحبتات به این اشاره کردی که خب پای زیادی رو خوندی و این خودش یه, یه نقطه یه هست یه مانعی هست برای بچه که میخوان تازه شروع بکنن و حالا مثلا وقتی از بیو شروع کردی خب این یه فرمورک بزرگیه و اصلا اکثران به خودشون میگن که خب من اگه بخوام بیشم کدای اینو بخونم بلد نیستم یا خیلی سخته یا متوجه نمیشم میدونی رفتن سراغ ریپزیتوری های مختلف خودش مان ذهنی برای بعضی از افراد ایجاد میکنه. تو،, تو با این درگیر بودی یا نه و مثلا پیشنهادت چیه؟ به بچه ها. واقعیتش ببین من همیشه میگم هیچ چیز سخت نیست مگر اینکه ما سختش کنیم. یعنی اگر من یه تمامیت یه چیزی رو نفهمیدم دلیل بر کنار گذاشتنش نیستش من اگر یه چیزی رو تمامش رو نفهمیدم بخشش شاداقل میتونم بفهمم که به اندازه فهمم ازش برداشت کنم. نیام اون صورت مساله رو پاک کنم به دلیلی که تمامیتش بزرگی و من نمیتونم بفهممش. پس این هم یه مورده برای همین من هیچ این برای یه مانع نبود. هران چیزی رو که میفهمیدم و برداشت یاد داشت نوت می کردمم یادداشت می کردمم ورداری کردم استار میزدم یه جایی توی یه کدسنی پتی داشتم کپی میکردم که بعدم بتونم بهش دوباره روک بزنم نگاه کنم چی بود چی شد؟ داستان چی بود؟ ولی از اون طرف، همیشه خوندن اینا باعث میشه که دستخط بقیه رو یاد بگیری این دستخطه خیلی برام جذابه این دستخطه پر از تجربه است پر از نکته های زریفه مثلا حالا میگم مثلا پرژه ریداکس زمانی که من خوندمش کلی توش حرکت های قشنگ دیدم که واقعا من تحسین کردم اون شخصی که اینا نوشت و تو اون دسته چطوری به این نتیجه رسید که میتونه انقدر ساده این مشکل رو حل کنه؟ برای همین اینا همه شد تجربیه که نیازیه دوباره منم تجربهش کنم از اون تجربه استفاده میکنه درسته حالا اسم ریداکس رو من به این مورد اشاره کنم که این خب نویسندش آقای دنابراموف بوده و اخیرا هم یه سایت داره به اسم جاست جاوا خیلی از منظر مایندست داره به جاوا نگاه میکنه و حالا بچه‌ها میتونن برن نگاه کنن و اطلاعات خیلی خوبی توش داره مخصوصا مخصوصا برای اونایی که دارن تازه شروع میکن خیلی هم عالی چه عالی من شما همچ من هم این نقطه بگم راجبه این موضوعی که علی گفتش و کد خوندن چقدر مهمه منیه بابای د... دنین کانوی اگر اشتباه نکنم اسمش بود دان کانوی و این خب بیشتر تو حوزه پرل کار میکنه و چند وقتش من یه پست ازش می راجبه این که چطور اصلا کد خوندن و کد زدن و یاد بگیری تمرین بکنی ست مرحله گفته بود اولش این بودش که می کد بد بنویس بعد میگفت کدای بهتر رو بشین مطالعه بکن بخون و بعد بشین یه چند تا کتاب خوب بخون یعنی اول میگه آقا خود دست کد بشه یه کاری انجام بده بعد شروع بکن کدای بقیه کدای خوب بخون و حالا بعدش هم برو چند تا کتاب بخون که این دانشت امیختر دقیقتر بشه و همین نقطه که همه علیه شرکت خیلی برم جالبه که تو این خوندن کود برقی خوندن کود خود چقدر میتونه تأثیر داشته باشه راجبه اینکه که این پترنای درست رو پیدا بکنی و بعد خودت بتونی ازشون استفاده کنی این دقیقا آره. یه قابلیتی بود که توی پرشنط روز اضافه کردم یعنی سال 2015 فکر کنم یا 2016 من یه پکیج رو توی گیت منتشر کردم به اسم فای. بیلیفایی چه کار میکرد؟ شناس قبض شناس پرداخت میگرفت میگفت این قبضه چیه؟ مبلغ شقدره؟ بارکودش شغ... چیه؟ و اگر دوباره ریورس بارکود میدادی از روش شناس قبض و شناس پرداخت دیکود میکرد و میومد دوباره تلاتو بهت برمیگردون و حتی ریلیشنه بین این دوتا که ولیدهیت هستن ما هم دیگه بهت میگفت من این سال 2015 فکر کنم یا 2016 من تشهر کردم سال 2018 فکر میکنم یا 2019 که من اومدم اینو دوباره رو پرشنت روز ایمپلیمنتش کنم زمانی که برگشتم به کد خودم که اون زمان نوشته بودم نگاه کردم خودم خندیدم اینو من نوشتم خب و اینکه چقدر تجربیات جدیدی دستم اومده بود که باعث شده بود که مثلا اون پروژه گفتم مثلا من میتونستم تو گیتش این کارو بکنم این کارو بکنم الان مثلا فیچر گیت هاپ گیت هاب اکشن اومده بود میتونستم این حرکت رو بزنم مثلا اتومیت داشته باشم اینجا مثلا اگر میخواد کسی مثلا کانتریبیوت میکنه استایل داشته باشه اینا رو اضافه کنم اینا تجربه که در فرایند خوندن ریپوهای بقیه به دستم رسیده بود که چطوری اوتومیت این کار رو میکنن و این تجربه قدر برام با ارزش بود که وقتی که نگاه به سرم میکنم میبینم چه راهی رو من تیه کردم و اون موقع کجا بودم الان کجا <تصفح> <تصفح> ببین یه موضوعی که گفتی راجب به این که یکی ای از که داشتی باعث شد دیری سراغ این پروژه این بود که یه همچین داده‌هایی به صورت مناسب اون بیرون نبودش و خب من خیلی برام جالبه که بنابر این اتفاق خیلی خوب و مهمی که توی این پروژه افتادی اینه که یه کالکشن یه مجموعه عظیمی از تمام مثلا پلاک‌های خودروها رو میدادام داری یا همین قضیه کد ملی و اینا. این اینا الان میخوام اینا اصلا متولیان مسائل مثلا سازمان ثبت احوال یا نیرو انتظامی که در افتا و, و اینا اینا خودشون این داده ها رو منتشر نمی کنن خود اینا گفت... نمی دونم اینا آدم فکر کنه که اینا به عنوان متولیان این امر باید یه جایی به صورت عمومی به صورت پابلیک داشته باشن که آقا مثلا خ... تمام این داده های مراد بین اینجاست و تو خودت اینا رو کجا گیر آوردی چطور اینا رو جمع کردی ما واقعا ل... به لحاظ فنی توی خیلی مشکلات داریم. مشکلت چیه؟ مشکل اینه که داکیومنت به اندازه کافی نداریم واقعا نداریم یعنی پیدا کردن جزیات اینا خیلی زیاد طول میکشه خیلی سخته واقعا خیلی سخت بود که من تونستم جزیات اینا رو پیدا کنم جزیات کد ملی رو پیدا کنم شماره کارت رو پیدا, پیدا کنم به صورت عمومی منتشر واقعاً نشده ببین منتشر نمیدونم. شدن ولی خیلی گم و گورن یعنی نمیتونی آها. به راحتی با یه سرچ ساده بتونی بلد پیداش کنی حداقل اون موقعی که من شروع کردم اینطوری نبود الان شاید اینطوری شده باشه نمیدونم حس ندارم ولی اون موقع این شکلی نبود اون موقع خیلی از بچه ها چالش اینار اینا داشتن که مثلا الان من میخوام یه شماره کارت رو ولیدیتش کنم چیکار کنم نمیدونم راهی نیستش خیلی سخته برا داستان حالا اینا هستش یه, چا... یه سری چالش های باحال من یه باگی داشتیم باگمونم مثلا حالا چند روز پیش اینا منتشر شد که ایشون میزدن ما دقیقا مشکل کجاست مشکل اینجاست که ما یونیکود دقیقه این ز... حروف عربی رو نداریم حروف فارسی و عربی رو نداریم من یادم اون زمانی که تبدیل اد دیجیتای فارسی به انگلیسی رو گذاشته بودم درست بود همه چی اوکی بود ولی رفتم دیدم چند روز پیش فکر کنم دو روز پیشه که یه ایشویی زد که آقا من می‌خوام این متن این اعداد عربی رو تبدیل به فارسی کنم از فارسی تبدیل به انگلیسی کنم و درست این فانکشن درست کار نمیکنه من رفتم بررسی کردنم که آره درست میگه کار نمیکنه یونیکود اشتباست در حالی که اون یونیکدی که تا به الان ما تو کد قرار دادیم داره به ازای تمام تتسکی ها درست کار میکنه و تمام تسکی ها رو پس میکنه. چی شد که این فیل میشه بعدف این یونیکد داشتهباست این دو رنجی از یونیکود داره که این دوتا رو بعد پس کنه. و همین موضوع باعث شد که مثلا تا به الان کسی حتون رسد رو بزنه ولی یکی این رو پیدا کرده ایش زد یا ایشیشه های متفاوت دیگه ای که بود حالا؟ همه این رو بذارم کنار پروژه پرشنطول به خودی خود ای بود که ببین جالب بود واقعا جالبه یعنی اینا همه دیسنترالایز شدن و دیگه دیسنترالایز نیستن این همه توابه کنار هم دیگه اما دیده نشد تا سال 2019 پروژه من اصلا دیده نشد تا تقریبا فکر میکنم دسامبر 2019 پروژه من هلوش 130 تا استار داشت 80 تا داشت یهو یه آروم آروم یه سری پست من تو لینکدین گذاشتم رسید به 130 تا بعد دیدم یه سری بچه‌ها سال 2019 شروع کردن اومدن کنار من روی پروژه پرشنتوس کانتریبیوت کردن الان اگر نگاه کنید 15 تا کانتریبیوتور ما روی پروژه پرشنت فقط رو نسخه تایپ اسکریپت اش داریم بجز زبان‌های دیگه‌ای که توسعه داده شد. من در عین ناباوری که حتی تصورشم نمی کردم پرژه در یک باز زمانی خیلی کمی تقریبا زیر 6 ماه در هشت زبان دیگه شروع, شروع شد به ایمپلیمنتیشن در زبان پایتون در زبان جاوا در زبان گلنگ، در زبان روبی در زبان داتنت در زبان دارت و زبانهای دیگه که وجود داشتن شروع شد به ایمپلیمنتیشن مثلا حتی الان سویفتش هم بچه ها دارن کار میکنن سویفتش رو ایمپلیمنت میکنن شونزده نفر آدم که اومدن جوین شدن که بخوام پرشینطولز رو توسعه بدن در زبانهای مختلف دیگه که وجود؟ خب این دیگه از مزاره چیزه دیگه؟ از مزارع در واقع قرار گرفتن تو کامیونیتی؟ تو صحبت در جان خیلی به زبانهای مختلف اشاره کردی یکی اینکه که الان این مدیریت در واقع نوشتن پرشینطولز تو زبانهای مختلف توسط خودت انجام میشه یا نه ب چه جوریه چه اتفاق داره میفته یعنی هر دوزلپرری که میاد حالا توی هر زبونی که خودش می‌خواد اینو داره توسعه میده با سبک و, و خودش پیش میره یا نه مثلا یه داکیومنتی دارید اون وسط که توی یه چارچوبی طرف با کانتریبیوت بکنه و یه سری مثلا مسائل فنی رو دراحت می‌کنید و این هم بهم بگو به که خب وقتی که توی یه زبون دیگه دارن بچه بچا دوزلپ میکنن به خاطر حالا پارادایم های مختلف ممکنه که ایدهای متفاوتی به وجود بیاد این چقدر توسعه رو رپای اصلی تاثیر می وزرا باشه. مثلا منی که اومدم با جاوا و مثلا پروژشانتون رو ای تو دوبلو کردم یهو وبزیرن هم رزیدی که اگه اینجا کودت تو جاوا اسکریپت اینجوری بنویسیم خو خب ممکنه بهتر باشه. از این اتفاقات هم افتاده یا نه؟ سوال خیلی خوبی پرسیدی. ببین مبنای همه بچه ها با زبان های دیگه اون نسخه تایپ اسکریپت. به خاطر اینکه اون نسخه تایپ اسکریپت به اندازه کافی دکومنتاسیش داره. دکومنتاسیش فنی، دکومنتاسیش غیر فنی. انواد مسندات اونجا نوشته شده و به اضافه این کد خیلی واضحه و شیوا و یعنی نیازیست به ازای اون کد ما خیلی توضیح بدیم هر جا نیاز شده به ازای ایفو ال سی ما کامنت بذاریم که چرا من ایفو الان دارم چک میکنم چرا این ال رو الان دارم چک میکنم چرا این نوشته شد به اندازه کافی مستند نوشته شده خوب یا بدش رو در موردش نمیخوام صحبت کنم اما واقعا بچه‌ها تا به الان راضی بودن حالا مب... پس مبنا تایپ اسکریپته اون نسخه به خاطر اینکه اون نسخه تایپ اسکریپته جلوتر از بقیه نسخه هاست همیشه و هر ایده‌ای که میاد اول یه نسخه آلفاش میره رو نسخه تایپ اسکریپت درسش پس میده پخته میشه بعد میره رو بقیه زبان‌ها اینپلیمنت میشه بوده زمان‌هایی که مثلا مثلا مشتاق خوریانی از بچه‌های همکاره که من بود نسخه دات نت رو چطور نمی‌داد مشتاق خیلی ذهنیت الگوریتمی قوی داره زمانی که داشت نمبر تو ورد و تون در نام نمبر تو ورد و ورس نام رو مینوشت توعشو. یه ایده داد گفتلی میتونستسی اینطوری بنویسی، اینطوری خب یکی اینکهتان کاپییت پایینتره بذاافین اینکه پرفرمانت بالاتره و اینکه کدت سادهتره حالا کار ندارم که بخشی از اون فانکشنالیتی که استفاده کرده بود قابلیت های زبان دانتی بود سیشاب داnet بود و ما باید این ورalterنتی رو میوردیم اما ایدهش ایدهی قشنگی بود اینکه چقدر بود ساده به این مسئله فکر کنه و ساده بنویس برام جالب بود بعد رفتیم دنبالی که بخوایم ما این دوتا تابر رو ریفکتور کنیم و این تغییرات رو اعمال کنیم حالا پس اینم از این بخش آره بوده زمانهایی که این اتفاق میفته اما مهمترین اتفاقی که میفته و یعنی تقریبا مهمترین چالشی که تو این موضوع وجود داره چالش اینه که وقتی یه فیچری ایمپلیمنت میشه بقیه یک فیچری که ایمپلیمنت میشه بقیه‌ام بعد ایمپلمنتش کنن یک دو اینکه ورژنینگمون بعد با هم هماهنگ باشه یعنی اگر پرشن ورژن یک سف هفته بقیه بعد یک سف هفت باشن اگر اونا یک سف یکن یه جای، یعنی یه جایی کار میلنگه اون،, اون تیکه باید درست بشه ببینه حالا الان پیروه همین قضایه یه مسئله که برای من سوال بودش این که خب احتمالا هستن آن جایی که میان از این کد استفاده میکنن و اینکه اگر نمیرم برای پیش اومده که بیش شرکتی یه جایی به صورت رسمی تو پرودکشن از این کده استفاده بکنن و به مشکلی بخورن یه باکی وجود داشته باشه یه مسائله باشه و بیان سراغ شما یه همچین موردی داشتین تا حالا؟ ما تو پروژه پی بانک مسکن پرشنطوز رو استفاده کردیم یعنی تقریبا تمامیت پروژه پرشنطوز تو این پروژه استفاده شده خیلی باک ها ریس شد از سمت بچه ها که این باک ها هر کدومش باعث شد که ما بریم یه دونه مثلا خود بچه ها مثلا سهل خودش بیاد بره روی پروژه پشنتوز کانتریبیوت کنه اون باگ رو برطرف کنه و ریورژن بدیم اما در مورد شرکت های دیگه نه تا حالا این اتفاق نیفتاد که یه شرکت رسما خودش بیاد به صورت رسمی این ایشور رو رئیس کنه و بگه این مشکل وجود داره اما شاید بچه‌هاشون از تیم‌هاشون این کارو کردن و نمونه‌اشم امیرحسین بود که این اتفاق افتاد از یه لازم احساس میکنم قدر این موضوع در ایران در توفولیت به سر میبره موضوعات مثل لایسنس و چه میدونم اکانتابیلیتی و اینجور موضوعات خیلی چالشی نخواهد بودین اگه مسئله باشه طرف اگر بخواهد میادش مشارکت میکنه ایشی میکنه یا مسئله دیگه خب بس با این چالش خیلی سرکار نداشتی یه مسئله که من میخواستم نمیدونم میک سنس میکنه پیشنهاد دادنش یا نب. همون درسم که هم داده‌ها پراکنده است بین ریپوزیتوری‌های مختلفی که داریم و داشتم فکر می‌کردم چقدر خوب می‌شد اگه یکی از این ریپا اختصاصی به این داده‌هایی که شما دارین اون داده‌ها اونجا قرار می گرفت یعنی نمی‌دونم با فرمت YAML یا JSON تمام این داده‌هایی که راجب مثلا پلاکا دارین یا تمام داده‌هایی که راجب بانک‌ها دارین و حالا بقیه هم می‌مدن از اینا استفاده می‌کردن این وقت داشتم ریپوزیتوری‌ها رو نگاه می‌کردم می یه مسئله رسید و اینکه آره اما واقعا خیلی جالبه برم که این همه افراد اومدن و مشارکت کردن و اینو نشون میده که چقدر تو زبان فارسی پتانسیل وجود داره که حالا بیایو و یه همچین کارهایی رو انجام بدید شکل بگیره که حالا مشخصا برای زبان فارسی شاید باشه دقیقا درست میگه. واقعیتش یعنی هدفی که هدف چیدین تا تقریبا دو ماه دیگه ما نسخه وبسایت رسمی پرشنتورز رو بالا بیاریم به اسم persentdashtools.dev و تمامی مستندات به صورت کاملا جامع از توضیح انواع الگوریتمایی که توی این پروژه استفاده شده الگوریتم کد چیه الگوریتم مثلا تبدیل ورس نمبر چیه نمبر تو چیه و جزیات دیگه الگوریتم تشخیص صحت یک کد چیه یا الگوریتم‌های دیگه که استفاده شدن همه اینا رو ما اونجا مستند کنیم به اضافه یه تجمیع مستندات تمام زبان‌هایی که توی یعنی پرشنتو در اون زبان‌ها توسعه داده شده. یه مورد اینه حالا در اضافه همه اینا بگم من روی یه چیزی خیلی حساسم همیشه هدفم بود یه پروژه داشته باشم که کد کاوریج صد در صد داشته باشه یعنی این هدف زندگیم بود یادم از زمانی که 14 سالم بود که برمسیر رو شروع کردم تا به الان سکر می کردم یعنی واقعا اولین پروژه که گرفتم بعد رفتم به ازاش کسی تست ساده با جی کوئری نوشتم جی یونیت بود اون ماجی کووری یون بود نوشتم همیشه دوست داشتم هم این تمام خط کدام سا coverageج بشه. آخر سر به همین آرزو رسیدم پروژه پر طول چند وقت پیش حالا بهجزیم اینکه حالا... یه سری پول کو صدش شد که این کد coverageج اوورد پایین که الان دوباره باید بریم fixکسشون کنیم در حقیقت توی ویژون فکر می کنم یک صفر به کد coverageج 100 درصد رسیدیم. خیلی هم عالی من خیلی امیدوارم روزی بررسید که این سایت بیاد بالا. و ما ببینیم شرکت ها و مؤسساتی که اومدن و اسپانسر شدن این منظرم خیلی میتونه اقدام خوب باشه که حالا که هم بچه اومدن و بسار تو او اوپن سورس همچین کاری رو انجام دادن و با این سطح از کیفیت که با قول خود کودکاوریج 100 درصد دارین امیدوارم این مقدار جا بیافته که حالا اگه شرکت داره استفاده میکنه بیاد به اسپانسر بشه یک کمکی بکنه به این پروژه که حالا جلو بره و انگیزه برای بچه ها. خیلی عالی واقعا عالی من بهتون تبریک میکنم باهته کاری که انجام دادین بچه دیگه میتونم برم ببینن مشارکت بکنم و خیلی فضای خوبی برای مشارکت مناحساس میکنم که اگر کدا بخونن و اینکه کل چیز به نظرم رو یاد گرفت ازش دیگه نکته دیگه فکر میکنه مونده باشه هرون که باخواه بهش اشاره بکنی کار دیگه پروژه دیگه یا مسائلی که پس ذهنت مونده راژ به این پر ز فکر میکنه که ما نپرسیده باشیم خود دوست داشته دو باشه توضیح بدی خودم دوست داشته دو باشم توضیح بدم واقعیتش اه, یه چیزی که در دنیای وب یعنی تقریبا تو دنیای اوپن سورس خیلی سخت‌تر از هر کار دیگه است ببین نوشتن یه پروژه اوپن سورس کار سختی نیست مدیریتش هم تقریبا میتونم بگم به نسبت چیزا که الان میخوام درنده بگم سخت نیستن. سخت ترین کار بخش مارکتینگشه. بخش ساختن اون کامیونیتیشه. اینکه اون کامیونیتی رو منسجم کنی، خودت رو بشناسی، اون پکیجت رو معرفی کنی. یه پروژه دیگه ای بود که به اسم PW budget برو تقریبا برای اولین بار فیچر بجی که کروم داد رو من اومدم سنترالایز کردم انوای ای پی روی متفاوت و یه جا قرار دادم که یک نفر با کال کردن یه تابه بتونه یه بجی رو ست کنه فارغ از این که در چه مرورگری هستش این انجام شد و چون یعنی جامعه مارکت بازارش بین مللی بود زبان فارسی نبود من شروع کردم رفتم تو توییتر به برنامه نویس های بزرگی تو توییتر وجود داشتن که فالوبر خیلی زیادی داشتن دستی مساج می دادم برای هر کدومشون کاسم یه مسیج خاصی رو می نوشتم و در این ناباوری خب می‌دونم خیلی سخت بود اما خیلی هاشون منو حمایت کردن یه توییت زدن در مورد پی بچ پی بچ می‌دونم خیلی نگرفت اما واقعا این لذت بهش برام زیاد بود که در سختی آدم دیدن و حمایت کردن اما در زبان فارسی این حمایت خیلی ضعیفه خی... میتونم بگم یکی نراحتی هم اینه که هر چقدر مارکتینگ کنی اما بازم بچه ها یعنی نمیخوام جمع کلی ببندن اونطوری که باید حمایت کنن حمایت نمیکنن. نمیدونم چرا دلیلش هم نمیدونم واقعا ولی دوست دارم بچه ها به یک خود کفایی برسن که اگر یک کسی یک کاری رو خود به صورت والنتیری داره انجام میده بدونه چشم داشته مالی و مادی خودشون بیان حمایتشون کنن یک استار دادن کار سختی نیست ولی اون استاره قوت قلب اون 15 آدمی هستش که در نسخه تایپ اسکریپت کانتریبیوت کردن و وقتی میرم میبینن یکی رفته بالا حس خوب میگیرن خب اگه من میتونم این حس خوبو برای بقیه منتشر کنم به بقیه شعر کنم خب چرا این کارو نکنم این یه نقطه ضعفی بود که همیشه من و خودم رو به شخص اذیت میکرد و خب دوست دارم شاید حداقل این پادکست واسه بچا اگه گوش میدن حداقل نه برای پرشین نه برای یک پروژه خاص اصلا لیبل رو پروژه نمیزنم هر پروژه دیدیم قشنگی یه اصطار بزنیم اون یعنی حمایت ما اون یعنی اون که من به حس خوبم و با اون طرف مقابلم که نوشته نوشت به اشتراک بذارم آره دقیقا دقیقا همینطوره ما هم دقیقا هدف همینه هم که بتونیم بشر رو کنیم که مشارکت داشته باشند با نکته خوبی که اشاره کرده اینه که مشارکت الزهان میتونه جنس کودم نداشته باشه همین که بیان بخونن هم به خودشون کمک میکنه و همین که فورک کنن یا استار بدن به اون توسعه دندم کمک میکنه. من خواستم ازت تشکر بکنم که وقت گذاشتی، اومدی و توضیحات خیلی خوبی دادی. مرسی از اینکه هر ابزاری که برای خودتون توصیه میدید می‌ذارید تو فضای اوپن سورس که بقیه هم بتونن استفاده بکنن. این این مشارکت واقعا قابل تقدیره. دستتون درد نکنه و من خیلی ممنونم بازم که اومدی و وقت گذاشتی و صحبت خوبی داشتیم. دستت درد نکنه. هرش. مچکرم از وقتی هم که شما گذاشتین بچه رایگانه هم رایگانه و توصیحش رایگانه و بهشترکوزاجیش هم بعد رایگان باشه هر چیزی دارم به دست میارم رایگانه بقیه بعد رایگان بهش برسه خیلی هم مالی بازم ممنون ازت و مرسی که تونین قسمت شرکت کردی خیلی, خیلی مخلصی خواهیش میکنم خواده. فعلا خدا نگهدار خدا افزه هم